چی شیدی؟ چی شدی؟, چی شدی؟ خوش... <تصفيق> سالمی؟ آره آره خوبه اون نوعه چرا خوب صدا نمی کنی؟ که خوبم دی؟ بگی بیم چه خوبه که تو اینجایی؟ اینه برو به بابات بگو به بابا؟ من که نشان چونی خونه آدم بایستم که؟ همون دیگه دوست هم نداره خب من دوست هم نداره؟ ها؟ کجا فردی؟ میدونم تابلوه آها خب هم بیشتر بود را اجاشی چشان تو بفرمی کار خریدی الان؟ چیه؟ سوزن. سوزن. سوزن. خرید. سوزن. خرید. اه. اه. یه هم مرسی فرار کنی؟ دیوونه شدی؟ من که دیوونه بودم <تصفيق> بابا کن فرار کنم میذاری میریم یه جای دورش کی که به کارمون کار نداشته باشه مثلا کجا؟ چه میدونم هرجه تو بخواه بری مریف ما بری. بری. مگر بریم اونجا کسی دو کارمون کار نداشته باشه پاییم بری مریف نه خیلی گله تو نمیخورم. من اهل فرار نیستم. میگم منو دوست نداری میگی نه. میگم تو دیوونه ای میگی نه. من که دیبونه هستم که. من دیوونه تو هم. با... باشه؟ کی شروع کردی علی با تو هستم علی از کی شروع کردی محمد یه خانوم خانم حرف همو بزنم میدونی یا نه بچه به من میگو از کی داری سیگار میکشی چاسته بابا رو خدا بابا او درد بابا او کفت. با تو هستم بچه از کی شروع کردی علی چی, چی شده مگه؟ چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ فکر میکنی من میذارم وای میسم نگاه میکنم تا تو جلوی چشمم خواهد بسوزونی نمیذارم زهل گوانده تر از شماشم منو بگیره علی احترام بابات نگهدار نگه من این آتیشه آتیش زندگی تو میسوزونه نکن نکن, نکن, نکن, نکن نکن بچه نکن میگم فرش کن نکن بچه این کن نکن نکن الی ماکه لخدامو شدی ماکه لو آدم آه ماکه لودی با با سعی میکنم بابا این فامید میکشم داره داره یه استیگار بدام بکشم. بودم. او. آه، پدید شده میگه چیو چیو چیه؟ تازه زام به وادم اوه آ میرم پدیده سیریش شد میگه بزاکنا اوه چیو بزاکره تو مگه چیزی وصف میکنی که بزاری کدا همشه فلعط چیه این دخمی مخی حال میکنم آ پسر سیگار بکشم اینکه تازه <تصفح> سیگاره یه دکتر به عمو گفته هفته یه بار ترک زعفرانیو کشه واسه قندت او خوب گفته خوب گفته ها ما یه فامیل <تصفح> داریم این دیگه 70 سالشه هاو موقعی که من یادم همه چی میکشیم همه‌چی می‌کشی؟ آره. خب بیا برنامه برنامهمون جووش شد دیگه. واقع یه دایی داره سر ساله همه چی میکشه من یه برنامه دارم. من میگم ما که الان چهار نفریم. داییش خبر کنیم بیاد میشیم پنج نفر. یه جوهر عذاب بغاشه دارم 5 کم هفتش میکنیم بش عجب آدم زایه‌ای هستی. میدونی من نمیتونم بکشم. همه میگه. میگن ددامو اون او تارافتم. ماله خودتی. هست ریلیه بای که پدیده رو چکار کنم شکار. باز میگه پدیده عزیز من پدیده سعی جای خودش خانواده سعی جای خودش من میگم زندگی تو به دو بخش دخصی میکن یه شو با دوست و رفیقا باش تا دایی علفی هم جور شده قراره تو برنامه هم شهکت کنه یه بخششو بزن با پدیده به خانواده سکت روده بریم بریم بزنیم بریم؟ بیام <تصفيق> <تصفيق> سلام این چه وضعشه مثل آدم یه بشتقاب بردو بردو بشین پشت میز غذاتو بخور نگاه تو کن بحشی ها میمونه یعنی خب توقع دیگه هم نمیشه اتو داشت وقتی که آدم یه مش لات و لوتی بگرده همینه دیگه به ما همه شون افلاتون هم. با حرفشون ببین چی میگنم به حرف بزن ببینمت چشاب چرا قرمزه چشاب قرمز میبینم وقتی سوال میکنم مثل آدم باید جواب بده میده یه باید کنیم یا نه خیلی بیشوری میدونیه نیستن نفهمی چطه با سیاماروانه دویو با با سی با اونگیزم خباری شده از دیمیقا چلایی تو رو نکره احمقه بیشور مادر نکرم احمقه شده احمقه من میدونم با سمایز دو با برگرد کسا پر نجمه نجمه اون تموم شده عمرو سلام کنم سلام چی شده؟ ماموت چرا حمله شده؟ هم ندارم. خیلی خیلی بی‌نصب. بخارمین علی کجاست نمیدونم چیزی شده میخوایی من باتون بیام نه نه من چیز نیست احتیاجی نیست بفهم من. پاشو بیابد ببینم ایت زهر ما یه بار سببسه آدم بیستر قرار میگه پاشو بیا ببینم ایت چه میدونم یه چیزی بگو بپیچنشو پاشو بیابد منتظرم. ایت دیگه شورشو داره بردی جلو من سیگار میکشی, میکشی؟ اصلا هم خورده آله. شانس هم داریم من که زنت نیستم ایشی اگه میخوای با حرف اون سیگار کوشتی تو خاموش کن خوب تو خونتون همه سیگار میتشن بله خاطر همینه که از سیگار حالا هم به هم میخورد سوال بله بگو چی کارم داشتی بمیپدید من که تو زندگی کسی چه غیرت ندارم وا هیچی حرف میزنی انگار مامان نیستن نیستم انگار تو کوچه خیابون بزرگ شدید نمیخوام منو دیگه حالا نمیخوام هندیش کنم ای خورتم پایه‌ای باشی جلو باباتونو بگو من اینو نمیخوامش من همین فردوسو دفترچه میگیرم میرم خدمه پس درس چی سک خور دیپلم میگیرم میرم خدمت نخیر دیپلم فایده نداره بابای من داماده تحصیل کرده میخواد من میخوام به دانشگاه دانشگاه بابای منم قبول نمی کنه. ای بابام بابام به درک قبول نمیکن، و خودت چی این همه دختر پسر با هم رفیق میشه سر دوست ما میره سر خونه زندگیشون به ما که رسید آسمون تپی خوشو سر من داد میزنی گلت میگه چی چی سلام میگه که غم عشقی تو دلش زندونیه شما بابا اول فکر کنم بعد زر بزن کرده. برو پشت بوم خونه شون بگو اگه پدی در به من از همین بالا خودم میندازم پایین خوش خب با چرا دری وری میگیره آقا من یه راه حل اساسی درست سرمون دارم من میگم آقا ما سه نفری باباشو خف میکنیم یه گوشه ای یه دفعه تو اگر را رو برسیم یه مش به من یه کله به سکله کله یه لقدم میپویان علفی بزن باباشو نجات بده باباش خوشیش میاد دخترشو دو دستی تقدیمت می‌کنه <تصفح> اجدابارت می‌شوه دیگه خب چیکار کار کلم بعد نبود که زیر میزنه آقا آره بچه ها خیال. مخامون هنگ کرده دو تو تو سیگاری خالی کن بکشیم بذاره روان شیم یه چیزی اومد تو مخامون دیگه ها من زنم تو کار سرنگ بازی الان هم خمار هم الان هم کارم لنگ این لنگه این الجسنوسکاپی چه رفی تو میگم تو من هم نهچه نهچه اون چکویون تو نهچه نمی این همه داروخانه عدیر داده به علیس من نیستم بابا یادو رو آره دیگه علی جون راست بیه دیگه یه حسام سکنه قیافش خزسته هر جا میره هیچی کف دستش نمیزه من. یه مردونه یک کن با ما این پسره بچه مصبته رفیقته بری کارت را میگذر بیا برو این ترمه میده بگیر دیگه بزنیم نستقیل در بیار جون من جون علی جون من جون من بزدم دیگه جون من روی قزای می‌زنه روی ما که خود ترومودولن بگیر ازش ایتونیسی چان توای اضافی هم بگیر ما دی این نثرافت ما شده چی نمیفهمی یعنی خوب چه کردی. خوبه. خوبه. همشی آره خوبه خوبه. آره خوبه خوبه. خوبه دیگه مامان چه سررسی بهتر شو مامان هم خوبه من دو تا پیس میزنم رفیق شو دو تا سورنگ به من میده سورن؟ سورنگ سورنگ سورنگ دینامیت که نگفتم سورنگ میخوام ادعای که بچا مریضه آمپول لازم پنسیلین میخوام بزن علی این رفیقات کی هم؟ من خیلی با شما حال نمیکنم حالا ارکی یه جوری دیگه نمیخوای سورنگ بدی برم یه جوری دیگه بگیرم نه میخوام خیلی خوب رفهم ما شی به رفیق قدیم نه نمیگیم برای شما گرم بزنم خدا خداحافظ علی آه پیش ما نمی آی گرفتارم میگه تو بیا با گرفتار یاد بیا باشه با در بیاری خیست سر ما میخوری باش نمیخوای با من حرف بزنی ولی من میخوام باید حرف بزنم من صبح تا شب کار کردم زمستون و تابستون من نفهمیدم جمعه کهی شمبه کی؟ نمیگم هرچی خواستین براتون فراهم کردم نمیگم پدر خوبی بودم نمیگم همه کار براتون کردم ولی نون حلال گذاشتم تو سفرتون. برای اینکه سالم باشید برای اینکه درست کار باشید برای اینکه رو ببینم پدر من آرزوم دیدن خوشبختی توه من چی کار پشم بزنم برخ نه پدر من بگو چی میخوای هیچی دردت چیه اون دختره میشنسیش میدونی کیه میدونی از چه خونواده ایه علی پدر من زن گرفتن به این سادگی نیست شما چرا خوش با از سوال و سلسو دو یعنی برم بیرون میخوام برم بر چی برم بیرون اینجا خونته خونه خودمه که هیچ وقت هیچ کاری رو سر وقتش نکردی از اون دوچرخه دید جایزه شاگرده ولی که سوم سبون رو آنمایی تابون موتور دویرستان باشیم بریم اون دخترتون برسی بابا علی مورد خدا نکنم کجای کاری بابا خیلی وقت مورده علی علی پدر منظورت چی؟ شرا با یعنی برم بیرون میخواب برم بسطقی خیابون میخوابم نه نمیخواب من میرم میرم سلام سلام سلام هم آقا محمد بحبه جنم این داروار دارید؟ اینا رو که این قرص احسابی خدامت نده فسرم علی داره از دست میره قیافش این روزا مثل مثل آدم های... من فکر نمی کنم ولی بره تو این خطا اولتر از این حفاظ بفقاشو می چطور؟ خوش خیلی ممنون خدا آقا محمد نگران نباش اون گرسرم نخور عوارز داره ها حالا سب کن پدرشی بعد میفرم خش. چه د؟ چند چرا؟ همیت وی. دلم بر شده چیزی از بپرسم راستشو به مم ميگی mm. تو چیزی مصرف ميکني جو ولایچینی پشت آنتن داره میاد آن چی این ایراستو سفیچه داره میگه بابا خیلی خوب گفتم چنگیزخان مغول داره میاد چراش کار داره نمی می نه آخه خودمونه واس چی به وایسادیم میگه چی رو میره میگه بابا چرا میاد چی کارش مگه ولی چون بابا خودمونه واس چی به وایسادیم به کسی چه ربطی داره نه نه شما نمیخواید تماشا کنین؟ چیو تماشا کنین؟ خلافو. قاضی شدی؟ پولامو جوم. برو بابور و دواتو بفروش برو ما این هستم. حداغل علی رو خیالش تو چیکارアシ؟ من دوستشم. رفوق کودکستانیشی بعد اوز میخوام ببخشید اگه شما رفیقی شیم بعد ما شیم؟ شما؟ به شما نمیگم رفیق. آخه چی میگن؟ ببین بچه چه پرو؟ برو با ایناست میگم توی پا چالت میکنه. بعد با دوباره هست. نسته... آها ماد ولش شما چی میگه ها. شما هر بلایی میخای سر خودتونی بیاریم بیاریم. رو دود کنیم بفرسیم هوا. ولی دور علی رو خط بگشیم. باید اون چیزو یه خط دور آقا بکشیم اوه علاقم نکنم بدم احمدونو جام کنه حالا میخواد فلان یه برنامه بذاره بده پخش میکنه برو به طریق احمد تو هرگه بفرسون سینو قبرسون من دارم میاد. من دارم میاد. من دارم میاد. من من من خود خونه از؟ نه نیستش. کجاست؟ پدیده داره با یکی دیگه میپره آمارشو گرفتی؟ نه پخ خواب دیدم دنیا یه گنگی. ما به دنیا آمدیم که زده حال بخونیم یک کشماش بله گفتم که پرزدششو نداره این زندگی هم ارزششون هم شعر نه اون که شانس نایی بردیم از پده ماده رفی بلشون چی رو بلشونم مادر نزده به خود من روزه دال بزنه جفتشون میکنشم جفتشون کیان عدیدو و الیاسو دیگه بکش این شب نسخیم چکار کنم آخ گفتی منم مخم هنگ کرد بس که فکر کردم. یعنیم یه فاز جدید بخواد چرا پول داری؟ حالا؟ ایچ به چه درد میخوادی؟ سادی دیگه که بخوام بیام این چه ازخوری خوب ایچه هم تردن کردی یخ میزنی که تو انگلیسی یخ بزنی بهتر از اینه که تو اون زک آتیش بگیری تو دیگه چه مر بدی بلون ردیف کردی؟ کم بگیرم بزنم. یه یعنی کمش عقل نمید هرگی گفت نمیخوام گفت کنم رو تلوازیت هم تو این هیری بیری وقتی که نصف شبیه حیرون جنسی یعنی گفت کردی. با دخترا رو نمیدن به اله هرگی جای من بود خونه شون آتیس داده بود اونم که وضعیت خونه خودمونه بعد وقتی ما به دنیا آمدن رنج کشیدن مردن فکر کنی اون دنیا چه خبره حالی بزن نعشه کنیم بعد بزن تو فلسفه جنوزی خیلی بالا میاره؟ برو سالا گیرم <تصفح> افتی میگم جدی نگو حالا صرف جدی نگو کمیس، آیا شام اینجا نیست؟ دست هرکس نمی‌نامه، آدم مشتری شی. دوست یکی دو ساعت دیگه اینجا میمونی زر نزم بابی برد خونتون جد نیمیم باباتون سکتونی هر چی زدی میپره چرت میگی دیگه حسله خونتون اصلا نداره برف میاده یخ میزنی سکتونه سعدت نشه زر نزم زود برو خواهی رفت Thank you. سلام دیروز با کی دو ساعت پای تلفن بودی؟ چی؟ میگم دیروز با کی دو ساعت پای تلفن بودی؟ هیچکی. lepas چی تلفن داشخاله؟ تلفن داشخاله. دو ساعت با چی تلفن داشخاله؟ ما چرم. زر نزن آمارتو دارم میگم با چی تلفن داشخاله؟ بیشور. آره بیشور هستم ولی بی‌ناموس نه. من ناموس تو نیستم. من ناموس تو نیستم. کجا؟ کجا؟ دارم میخوام چه غلطی بگم؟ دیگه هرچی تاموشه. یعنی چی؟ یعنی به اندازه که دوست داشتم ازت متنفه به خاطر یه چک حداقل یه بهونه بهتر بیا نه به خاطر اینکه خیلی بچه ای به خاطر اینکه هیچ را خوض نمیشه تو هم هر جایی چو من رفیقای منو دادی. آمار کیو؟ میگم واسه چی آمار رفقای منو دادی؟ من آمار کسی ندارم. آره خب، حداقل جیگر باشه بشه غلطی میکنی کوش وایسا. گفتم من آمار کسی ندارم. ببین من شرما، من شرما. شب نشده اینا رو می‌کشی بیرون وگرنه همین خونه رو سرت خراب میکنم ها. سر سر من؟ آره رو سر تو. رفیق، بودی داداش نیستی دیگه. صاف کن دارن با تلفش. آقا شما درس خوندی شدی نسخه پیش، من همین کثافتی که می‌بینیام. چرا داد؟ بی خود قیافه آدمای هم به خودت نگی، چون عمرن نمی‌فهمی من چه مرگمه. نه بدبختی کشیدی، نه بابایی والا سر رو بده بخواد بهت گیر بده، اشخصم که یخ. علی، تو چرا فهمکنی هر هرکی داد بزنه حق اونه؟ چرا؟ بابا، خفه شو. واسه من اده بچه رو در نیا. صاحب کن ببینم. ا، هر چی نمیگم، واسه خودت میدوزی، میباری، میافی آره، منم خیلی حالیم نمیشه، خیلی نمیفهمم، ولی بدبختی هم کم نکشیدم آ. و... ولی تو اینقدر احمقی جه نمیفهمی داشتنه بابا هرچی که باشه بازم باباست بابا تو اینقدر بچه ای اینقدر بچه ای که نمیفهمی این بدبختی نیست این لطفه لطفه که زودتر بزرگ شی خدا خواسته که ما زودتر بزرگ شیم علی سب کن دارم با حرف میزنم ببین به چه زبونی به تالی کنم با این راهی که داریم میری کمتر از یه ماه دیگه سر همین اکو، کاکو، علی، صابون رو تنها به دعا گره بزنیم یا اگه ولد بودم از همین درخت خودم رو دار می‌سادم. خیلی حال میده تو نشگی مردن یکی ندونه فیلم کنیم تو حالا دعا خودکشی گرده سرک کردم نشده سردفه دست سرک با سر باید جوری گفت کردی تو میخوای مواد بزنم با وقتی یاد بگیرم تنمو دارگیر بزنم تا به پدیدست خریته هیچ دفتری ارزش موردن نداره من با اون تو جهنه هم میرم خری دیگه واسه سه چیزی بایم ارزش داشته باشه شما سلام بس دنبال روان بالو تنمو دار میگردیم ببین لی من خرابم خراب میدونم دو میدونم خرابی داشت چیه تک خوری میکنی تک خورای تکش ای شک تو روی در این پری جوی آزد شده ای کل جو تا علفی <تصفح> با دورانو سی تو که خوبی بابا علی گفتم برگردم زنه رو گرفتی دیگه آزد خوبی یه بابا پر یعنی چی؟ پریده پریده بدریتارمون مفتری که تو خیابون گیرش بیاری تو خیابون از گفت میره تو خیال بچه بچا بابا احسان تکله نمک تو نشدی نمی داری چون ذخیره من که میگم بریم دوا بزنیم من خوراکمون چا باش ول کن یارو برایتون میگم از فواید حبس کوتاه مدت آقا اول اینکه حبس و حبس کشی سکم حبس مال مرده ولیام امیدوارم که قسمت بشه یه سکم حبس تو حبس با هم بکشیم این حال هوا بیاریم بیرون دیگه حبس کشیداتم داشتم علومه حبس کشیدات سیره خوب ناراحت شدنه یه خیادی نیست من خوام تو تا تایش برم تای تایش پولو بابار بست در جاش بابا واسه این پول زحمت میکشه باشه دودش کن واسه خودم نمیخوام بابا نمیدونه با این پول چی کار میکنی من که میدونم تا باید کنردادش تو رو خودا ما بابا بفا من دق میکنن و... درک بکنن برو بگی بکر بابا نمیخوام نمیرم اصلا بخوا هر جا بری باد بیام یه دون میزم زیر فکت زکت در بیاد پول ورا چی میخوای بابا پول چی؟ قاتی کردین؟ چی؟ پولم کجا بو؟ زری میزنه. پدر یه چیزی ازت پرسم بهم جواب میدی؟ تو چیزی میکشی علی؟ ترم برده تب تخ فراموشی دارم خونی کنم با این و خونوشی چرا چشم دلم کوره اصای رفتنم سست کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته خدایا یا تو من خودت گفتی که کوتاه از این جو که ولی استادم چقدر تاسمون سمون راهه من از تکرار بیزارم از این لبخند پجمرده از این احساس یعصی ای ای که تو رو از خاطرم برده به تاریکی گرفتارم شبم کم گم کرده بگیرم چشمای کورم از آرده کمه خوابه نمیگیرم مگه من از یا من کجا دنیا نمیذاره سر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 نه با، توننبیه هیچ جا خود آدم نمیشه برم به سلامتی داشمار چاله اون آب رو بیارم بعدش هم اتا ستا بکشیم. بکشم باره بیاره. باره بیاره. با با با هستم خلاف سرپاینی هیچ راقم نیستم نسمده با مایکل بیخیالی مورفی نمیخوایم مفجره کنیم یه بچی سیگاری دوره هم میزنیم آل میکنیم دیگه حالا دو دوتا پیک رزنم مورفی و چه نگو، چه سر بگو. ما ما چه تعریف کنیم؟ چه خبر؟ چیکار کردی؟ خودت تعریف کنیم. بعریف، بعریف آتش کن. تعریف فریفو بی خیالشون آتیش گم بکشین. چی آتیش کنم؟ بابا من تو ترک نکرده بودی. آره، من ترک چیه؟ ترک دو دوچرخه است. برای چه قدیم اصلاً قدیم گفتار. میگه لبی که خورد به وافور، شستن میشه با صابون؟ نه. کافور. کافور. به به، اونم که داره میاد. بیا. مزده فقط مداریم مزده بیتی خاک شد هم ازکن آقا بخواست یه هایستو اینجا رو بذارم بنگ لادش در خدا خدا بیامورز گفته بود که بنگلادش، یعنی جایی که هم بنگ میکشن هم میچفن <avere> ای خیلی خوبه بنگلادش دیگه من جو میاد ای بنگلادش. بنگ لادش بچه بکشیم دیگه اصلا میگن از قدیم گفته بنگ چی؟ بنگلادن لادش. بنگ لادش هم خوبه آره چرا که نه دیگه بنگ و لادش و دیگه پیجی ما رو بده دیگه بابا بسید من با درست نسوزم لبم سوزم شیشه و چلیم لبمو سوزنده سیگاری و بنگ محتمو بگونده بای نگو نگو نگو, نگو نگو از خماری دیگه نمیخوام نشد بشم با یه سرسیگاری وای نگو نگو نگو نگو از خماری ویدیگه نمیخوام نشد بشم با یه سرسیگاری خفلو میرسی کنده آقا حالا میخوایم سروید ملی بندادشو با افتخار داشتی بای کرده تازه از حبس در اومده همون اجرا کنیم بس. هر که در جهان گمراه نیست. هر که بانجی نیست مرد ران نیست. شرست کدیم چه کسی صف کرده میکنیم؟ نمیشنم چی میگی. داری تو به همه گول که بیگه دیگر... عوالی عوضی انگل دو دوتا زده بودم زیر گوشت حالا آدم بودی جیگرشو داشتی زده بودی حالی تو خودا کن بیا برو بچه میزنم لحظه تو o aşkını al hadi زمانی بزرگتری آرزوینی بود مثل ماردونا بشن حالا بزرگتری آرزوینی تو بوجه نشه گفت مثل ماردونا فوتپولیس نشدن اینه مثل ماردونا احمدی که شدن خبه یا وقتی میرم یه وجه بیشتر ازت مثل ماردونا بشن دوسته خدا یا تا هلی نگرفتی یا بنده دیگه چیه زندگی میکنم چرا تبدیل نیستم آدم نیستم نیستم هم؟ آدم هستم؟ آدم هستم یا نیستم؟ آدمم هم یا نیستم؟ به کمه ارابونیت؟ چی؟ هیچ وقت نبودی باسه ما نه از رایی گردن رای دیگه این تو تو تو نگاه من خودم تنهایی تمومش میکنم نداشت من رفق نیمیرا نیست وقتی گفتم هستم یعنی تا آخرش هستم نگه موکنه خودمون خودمونو بکشیم یا با سیانور بکشیم هیچی نمیفهمیم یکی اگه میخواییم بمیریم ادقال توب کنیم بمیریم دیگه شعال و سرخ امر یا دنیا رو دونه. اخره برو تو برو تو پسر میگم انچه ترک کن چی؟ اون چه چیزو ترک کن پله پله مصرف مواد کم میکنن که نه بیخوابی بکشی نه خماری بکشی هیچ نگران نوش بیه مرشام علی الان تا حالا خود تریاق بهترین راه درمون شناختش نه بابا هفهش ما هم بیشتر دیگه نمیشه هفهش ما گفتی آزم حالا در یه آزم ها شه فرقی میکنم آزم, آزم. آزم. های خادمین مواد مخدر لذت داره هر کم بگه نه نظر من داره دروغ دروه میگه اما وقتی این لذت تر میزه روی کفه ترازونی زلتاش هم روی کفه ترازونی اینه نمیارزی برای به دست و این لذته ها... بدیه یه سه چیزها رو دست بدیم ا و از همه مهمتر به نظر من آرزوها رو یاده ببین اگر میتونین به رو پرداخت کنی بسید به دستوردن اون لذت بسم الله برو بزن اختیار با خودت چاو سره نیست همه را میل مدارای هست. گفت رازي که در اون است ببین. اگر دیده بینی است. هست بلغاریم چه سیگار داری؟ سیگار نخاین. آره. خوش لسه سیگار سیگارتو میدون خدمت شما همه شما میکرم مرسی همه شما اینجا این مهل چی میزادیم نزم داری باشه چی دوست داریم خیلی ها کشیش اکس آیس آلکار سیگاری هروین که میخواییم الان چی میزنیم توپ ساز تیو شفتیم آره چی مگیدیم؟ جون خودت باشه جون خودم گیدی نداره چی مگیدیم یارونی یازم رو تون میکشه خب کلن سه روز مایی بیشتری تو بیشتر خونه از خونه بیرون از خونه بیری بیرون؟ چی از خونه بیری بیرون؟ دیگه کار تمام بدیش؟ نیست چه سابساعت میشه؟ چطور؟ یه شهری در رزر بگیر درفت پنگ سال بمباران کردن حالا ما بمباران قطع میکنیم سه روزی ترکش های از شهر خارج میکنیم آیا اون شهر آباد میشه؟ تو هم با بمب مباد مخطر در درفت چندین سال تمام قسمت های فیزیولوجی و رو بمباران کردیم و تمام قسمت ها را داغون کردی حالا اگر سه روز قطع کنی هیچ اتفاقی نمیافت شانو کنی که سه روز تکیشی همه چی ترمی میشه نه اینطوری نیست زمان می‌خواد. خیلی دیگه است چی اینجا؟ ترکانه ترکانه دو جل هست؟ خود خود رو دربان کنی. بوتیش هستی؟ بسم الله. عادت دیگه می‌خوای روشن کنیم؟ تموم شد. آبلبرام این چه دیدم شما؟ کیو پدیده رو زرت یاموشقش هم شد. همون روز اول. همین روزا هم نمیشه نیست. باغا کن که نیست. نمیدونم قسمت دیگه بسوش دارم دیگه بسوش دارم که هرچی دوست داری داشته باشه شیشگری جان خبا یک را چیز زیادی خودا نخستم <تصفح> برانون خودش بهتر میدونه که چی. چیه باید داشته باشی؟ حال تفکر و خیال و خواسته ما همیشه آن چیزی نیست که می‌بینیم و میخوایم بلکه آن چیزی است که نمی‌بینیم و نمیخواهییم زیرا که زمان حال برای ما واقعی است. الو توییا من همینطور هنوز از من ناراحتی نه بعد میرفتیم واقعا چرا که تنها زمین بخوره تنها پشان بزرگ شد فکر نمی‌کردم کردم این چه ولی شدی، شدی، بلی شدی عوض شدی بزرگ شدی خوشحالم این برداره بارون می گیره uh -huh. را ترتیب گفتم حرفا متو نسخه خوندم اون <تصفح> نسخه واسه ته بابا هم بود روز اول سالگرد رهایی و آزادی علی عزیز رو جشن میگیریم. من طبق روال تولد‌های کنگره از علی عزیز خواهش میکنم که چند لحظه بیستون و به افتخارشون یه دست و بچه‌هایی که با چهره علی آشنا نیستن با چهرهشون آشنا بشن. خواهش میکنم کرم. خب علی موقعی که اومد به کنگره مصرف کننده هروئین بود اونم به صورت تزریق در کنارش حشیش بود، تریاک بود. آنتیکس های مختلفی رو مصرف می‌کرد و واقعاً های خیلی زیادی رو در جسد روان و جهانبینی خودش به وجود آورده و وضعیت کاملا به هم بیخته و بیتعادلی داشت. علی در آستانه کارتون خوابی بود و میشه گفت که تقریبا خون رو از دست داده بود و تبدیل شده به یک شوله‌ی سوزانی که هم خودش رو می‌سوزوند و هم دیگران رو. علی زمانی که وارد کنگره شست شد با توجه به خواست و حمتی که داشت و واقعا خواستار رهایی بود تونست در مدت یازده ماه اعتیادش رو با استفاده از روش درمان تدریجی کاملا درمان بکنه و به درمان قطعی برسه علی عزیز رو الان وقتی که نگاش میکنیم نه در چهره و نه در کلامش و نه در رفتارش اثری از نمی بینیم. علی امروز فوتبالیست خیلی خوبی هست و فوتبال رو هم خیلی خوب بازی میکنه و همه اینها نشانه های درمان قطعی احیاد هست و نه ترک احیاد. من امروز رو به علی عزیز به خانواده محترمشون که اینجا حضور دارم به تمام اعضای کنگگرش هست و همونطور جنا های ماندس تبریک میگم و براش آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که در روزهای آینده و به زودی شاهد کمک راهنمایی علی عزیز هم Obrigado. بسم الله الرحمن الرحیم پیمان من مسافر علی در پیشگاه الله پیمان میبندم به عنوان کمک راهنما همواره با در نظر گرفتن معرفت عمل سالم و ادالت در کمک برای رهایی مسافران از دام اعتیاد کوشا باشم. باشد در پیشگاه خداوند همیشه سر بلند با من. آمین.